سالیان سال پیش از این شهری کوچک بود که در میانه کوه های بلند و جنگلی انبوه قرار داشت. شبی دسته چوپان در مهمان سرایی نشسته بودن و از روزهای گذشته حرف میزنن. آنها درباره اتفاقهایی که برای شان افتاده بود، چیزهای عجیب و غریبی تعریف میکرد. کم کم نوبت پدر مارتین مونقرعی شد که آنچه را برای میگویم؟ از زبان مارتین است. دوستان، همه شما ماجره های عجیب و غریبی را از سرگزرانده اید. اما آنچه بر سر من آمده شگفت انگیزتر تر از است که برای شما اتفاق افتاده. زمانی که پسرکی چوپان بودم نه خانه ای داشتم و نه کسی از من مراقبت کند با کوله ای بر پشتم از دهکده ای به دهکده ای دیگر میرفتم و جایی نبود که زیر پا نگذاشته باشم. همین که به قدر کافی بزرگ شدم به عنوان کمک چوبان توی قوهستان سرگرمه کار شدم و سه سال کار کردم. توی یک شامگاه پاییزی که رمه رو به خونه پیش می‌روندیم، متوجه شدیم که ده گوسفند کمه. اربابم گفت به جنگل برو و دنبالشون بگرد. همراه سگم هم دنبال گوسفندهای های گم شده گشتیم. اما سگ نتونست ردی از اونها را بو بکشه. همه جا زیر بوته ها و درخچه ها را گشتیم. تا اینکه هوا کاملا تاریک شد. من که اون نواحی رو نمیشناختم و راه بازگشته به خونه رو توی تاریکی نمیتونستم پیدا کنم برام شدم که زیر درختی بخوابم. نیمه شب سگم بنای بدقلعی گذاشت و بلند آرام آرام به نزیکم اومد و دومش میان پاهاش گرفت. از رفتار سگ فهمیدم که تو اطرافم خبرهاییه. پس با نگاهی به دور و برم زیر رگه های روشن مهتاب پیکری ای رو دیدم که رو به روم ایستاده بود به نظر مردی میومد با موهای پریشون و در هم ریخته و ریشی دراز که تا روی زانوهاش فر و ژولیده بود روی سرش حلقه گل کوچیکی داشت و شالی از برگهای های بلود به دور بدنش پیچیده بود توی دست راستش درخت سنوبر از ریشه برکنده ای داشت. از دیدنش مثل بید به لرزه افتادم و چیزی نمونده بود که جون از تنم بیرون بره. موجود بیگانه با دستش اشاره کرد که دنبالش برم. اما انگار که به زمین نوخته شده باشم اجامت کن نخوردم. مرد غریبه با صدایی خشن و نخراشیده گفت چوبانه بزدل دلیل باش من دانندهٔ گنج کوهستانم اگه همراهم هم بیای مقدار زیادی طلا رو از زیر خاک به دست خواهی آورد با اینکه تا حد مرگباری تمام وجودم از وحشت خوش شده بود هرچی دل و جرت داشتم در خودم گرد آوردم و گفتم روح شریر از من دور شو من هیچ رغبتی به گنجت ندارم با شنیدن حرفهام شبه خشمینانه به من چشم دوخت و با لحنی تمسخرآمیز را میز گفت. هم. ساده له میخوایی لگت به بختت بزنی؟ باشه. جوانک آسمان جل. تمام عمرت همینطوری بمون. اون انگار که میخواست از من دور بشه. دوباره رو به من کرد و گفت. فکر کن. به خودت فکر کن. بچه یه بلگرد. این منم که پول پشتیت رو پر میکنم و جیب هات رو پر می کنم. پاسخ دادم. هیولا از من دور شو. من هیچ کاری با تا ندارم. شب هراسناک که دید هیچ توجهی به هرفاش نمی دیگه پافشاری نکرد و گفت. روزی پشیمان خواهی شد. و با نگرانی به من خیره شد. بعد فریاد زد. به حرف هم خوب گوش کن و خوب به دل بسپار. چون وقتی او شاها باسه جا اومد برات سودمت خواهد بود. گنجه هنگفتی از تلا و سنگهای قیمتی تو جایی ام زیر خاک قایم شده. وقت سپیده دم و نیم روز کامل پنهونه. اما نیم شب دسترسی پذیره. هفتصد ساله که مراقب این گنجم. حالا زمان رفتنم نزدیکه. این دارایی برای هر کسیه که بتونه اون رو پیدا کنه. دلم میخواست که اون را به دست تو برسونم تا در حقت مهربانی کرده باشم. چون گوسفندات رو به چمنزارهای های پوهستان من آوردی و باعث خوشدلیم شدی. به این ترتیب شبه به من گفت که جای دقیق گنج کجاست و چطور میتونم اون رو پیدا کنم. انگار همین دیروز بود. چون همه حرفهاش رو مو به مو به یاد دارم شبه گفت به طرف کوه‌های کوچک برو به اونجا که رسیدی مسیر دره پادشاه سیاه رو بپرس کمی بعد به جویباری و و بعد از اون به رودی میرسی ردش رو بگیر تا به پلی سنگی کنار کارگاه چوب بری برسی از پل اوبور نکنو فقط از سمت راست رود به پیش برو تا به سخرهی بلند که در برابرت ایستاده برسی. تخت سنگ انگار بر اثر سر زربهی شکافی مثل گور به خود گرفته. با دیدن شکاف اون را حفر کن. اما کار بسیار دشواریه چون خاک واقعا در هم همکوبیدو سفته. به هر حال به کارت ادامه بده تا به سنگی محکم که در دو طرف قرار گرفته برسی. زودی چشمت به لوحه سنگی چهار گوش میفته. اون رو با فشار از دیوار کنار بزن. بعد به ورودی خزانه پا میذاری. از ورودی باید خزیده بری. البته وسیله روشنایی کوچکی باید با دهنت نگهداری. دستات رو آزاد بذار. مبادا که با دماغ به سنگ بخوری. راه شیبدار و سنگها تیزن. اگر زانوهات کوفته شد مهم نیست چون تو مسیر دستیابی به بخت اقال پیش میری تا موقعی که به راه پله پهنی نرسیدی استراحت نکن از پله پایین پایی تا به فضایی جادار میرسی که سه در داره دو در بازه اما در سوم با گفرها و چفتهای آهنی محکم بسته شده از در سمت راست نرا مبادا که استقنهای صاحبان گنج رو آشفته کنی. حتی از در سمت چپ هم داخل نشو. چون به مار خونه که پر از مارهای کوچیک و بزرگ و عفیه پا پس باید دری رو که محکم چفت و فست شده با ریشه چوبین و سفت درختی که در به رویده باز کنی. این ابزار چوبین نباید فراموش کنی. وگرنه بیخود و بیجهت خودت رو به درد سر میندازیم چون هیچ ابزار دیگری به کارت نمیاد شکارچیانی هستند که از این ریشه چوبین برای شکار استفاده میکنن و شاید بتونی به طور اتفاقی تو یکی از چوب فروشی اون رو پیدا کنی اگر در یک مرتبه و با قرغر و سر و صدای زیاد باز شد نترس. چون علت سر و صداها بر اثر قدرت جادویی ریشه چوبینه. البته به تو آسیبی نمیرسه. حالا چراغ رو کنار بذار. چون برق و درخشش تلا و سنگهای قیمتی روی دیوارها و ستونهای گنجخونه خونه چشمات رو میزنه و تقریبا چیزی نمیبینی. اما حواست باشه که چطور به طرف گنج دست دراز میکنی. وسط گنجخونه صندوقی مسیئه که تو اون طلا و نقره هر که بخوای هست و تو واقعا از هر نظر راضی میشی اگه بتونی هر مقدار که میخوای با خودت برداری تا آخر عمر نیاز میشی سه بار میتونی به گنجخونه بری اما اگر بار چهارم به سراغ گنج بری خطری بزرگ کمینت هست و به خاطر حرص و طمعت به سختی مجازات میشی همین که پا به گنجخونه خونه بذاری از پله ها میکنی و پاهات میشکنه و همونجا زمینگیر میشی و خوراک مارها هر بار که به سراغ گنجخونه خونه میری یادت باشه که موقع بازگشت حتما خاکهای شل و پراکنده قسمت ورودی گنجخونه پادشاه رو صاف و سیفت کنی که هیچ ردی به جا نذاری همین که حرف شبح شبه به پایان رسید، سگم گوشهاش رو, رو به بالا گرفت و شروع به واق واق کرد. من صدای کوبش شلاق گاریچی و قیج غیژ بلند چرخ ها رو تو فاصله دور شنیدم. وقتی سرم رو برگردوندم، شبه ناپدید شده بود. چوبان قصهش رو به پایان رسود. ارباب که همراه بقیه افراد به گوش کرده بود، موزیانه گفت خب پدر مارتین حالا بگو آیا به کوهستان رفتی و اون چرا شبه قولش رو داده بود پیدا کردی؟ یا قصه ای که تعریف کردی ای بیش نیست. ریش سفید پاسخ داد نه نه هرگز نمیگم که شبه تو رو گفته چون من هرگز سراغ گنج نرفتم. اونم به دو دلیل. اول اینکه که جونم برام بیشتر از گنج عزیز بود که نمیخواستم بی اون رو از دست بدم و دوم اینکه که هیچ نمیتونست به من بگه که ریشه چوبی مورد نظر رو کجا پیدا کنم. بعد چوپان سالدار دیگهی به نام بلیز شروع به صحبت کرد. حیف شد پدر مارتین. رازت مثل خودت پیر و سال دیده شده. اگر اون چهل سال پیش، بی کم تعریف کرده بودی این همه سال رو بیهوده بشه سر نمیذاشتی بدبختانه الان حال و توانش رو نداری که از گوه بالا بری اما خنده داره اگر بگم که این ریشه چوبی رو چقدر راحت میتونستی پیدا کنی چون به کامک دارپو به سیاه ریشه چوبی درخت رو ایده در رو به دست میآوردی ببین وقتی بهار موقعیه دارکوب مادر توی شکاف درختی لونه میسازه و تخم میذاره بعد از بیرون اومدن جوجه‌ها از تخم به سراغ لونش بروه و با مقداری خلوخ سفت چمنزاری ورودی لونش رو ببند و پشت درخت کمین کن تا پرنده برگرده و به جوجه‌هاش غذا بده وقتی ببینه نمیتونه وارد لونش بشه توی اطراف درخت به پرواز در میاد و از روی آیزا نگرانی فریاد میزنه بعد به طرف غروبگاه پرواز میکنه وقتی دارکوب دور شد باید پارچه قرمز آماده داشته باشی اگر هم در دسترس نداری از پارچه فروشی چند متر پارچه قرمز خریداری کن پیش از اون که پرنده برگرده سری به پای درخت برو خیلی زود دارکوب سیاه با چوبین توی منقارش برمیگرده پرنده با چوبی صفت محکم روی کلوخ میکوبه تا راه لونه رو باز کنه. بعد خشمگینانه عقب پرواز میکنه. همون موقع پارچه قرمز رو زیر درخت پهن کن. پرنده که با دیدن پارچه قرمز فکر میکنه درخت آتیش گرفته از وحشت دهنش رو باز میکنه و ریشه چوبین پایین میفته. خیلی از آدم ها واقعا آتیش درست میکنن و توی اون دست دستش و های سرخ گل ها رو می باشن. این روش خیلی مناسب و سنجیده نیست. چون اگر شعاله های آتیش درست در لحظه مناسب رو به بالا نره، دارکوب باریشی چوبین توی منقارش از اونجا دور میشه. همه کسایی که تو اونجا بودن با علاقه به حرف های بلیس گوش کردند. بعد از تمام شدن حرف های چوبان پیر چون دیر بود، همگی رو به خونه‌هاشون به اما یک نفر تمام شب رو غرق در افکار خودش تو گوشه‌ای نشست و جاش تکون نخورد استاد پیتر زمانی مهمان سرادار ثروتمندی بود و توی کار آشپزی از همه سر بود اما با گذشت زمان دنیا و خوشبختی از اون رو برگردوند و حالا به خاک سیاه نشسته بود پیش از این اون مردی زنده دل و سرحال بود و به لطیف گویی علاقه داشت. همونطور که گفته شد تو کار آشپزی، تو سراسر اون نباهی کسی از اون سر نبود. اون توی کار پخت ماهی، خورش و حتی شیرینی هایی با روکش نان تبهر داشت. اوزای زندگیش که رو به راه شد تصمیم گرفت که به جاهای مختلف سر بزنه تا همسری مناسب پیدا. اما از بخت بد زنی نصیبه شد که بسیار بد زبون بود و تو و سر اون نواهی تندخویی و بد سر زبونها بود. همه از همسرش بانو ایلسه که زبونش بدتر از مار بود نفرت داشتن و روستایی جوون همین که حتی از فاصله دور چشمشون به اون می راهشون رو کج می تا با اون که برای تک تکشون فرشی تو چنته داشت رو درون نشد. خلاصه وقتی استاد پیتر با این زن آشنا شد و مهارتش رو توی خونهداری و کتبانوگری دید، به اون پیشنهاد همسری داد. زن با شنیدن پیشنهادش از جا پرید و روز بعد بله. درست روز بعد اونها زن و شوهر شدند. اما هنوز پایشون به خونه نرسیده بود که دعواشون شروع شد کارشون از بگو مگو به دست یقه شدن کشید و گاهی شوهر زن رو به دنبال خودش میکشید و گاهی هم زن کتک حسابی به شوهر میزد. به هر حال همسایه ها به درستی گفتن که اوزا توری شده که استاد پیتر دیگه روی آرامش رو نمی بینه با گذشت زمان اونها صاحب فرزندانی هم شدن و به خاطرشون دست از دعوا برداشتن. اما دوران خوشبختی و آرامش خونواده کوتاه بود و رفتارهای وحشیانه همسر دعوایش بلایی به سر بچه ها اوورد که تو سرمایه زمستون یکی یکی از دنیا رفتند. استاد پیتر به درد بخور نداشت که از خودش به بسازه. اون از مرگ فرزندانش بسیار آشفتهحال شد دلش بچه میخواست تا از اون به یادگار بمونه وقتی با دست خودش بچهای رو پس از بچه دیگه توی گور گذاشت لابه و زاریکنا به دوستاش گفت آفت به درختان پش و افتاد و دیگه میوهای به بار نخواهد نشست اما با گذشت زمان صاحب دختری کوچولو شدند که بسیار قوی بنیات و درست بود و خوشبختانه از اخلاق تند مادر و رفتار نسنجیده پدر اصلاً بهره ای نبرده بود دختر بزرگ شد و قد کشید و روز به روز زیباتر شد از همین زمان بخت نیک به خانواده روی کرد و کارو استاد پیتر رونق گرفت اون از همون آغاز جوانی از دردسر و مشکلات خوشش نمی وقتی پول به دستش میرسید با خیال راحت خرج میکرد و حتی برای روستایی‌های های برسته هم نون فراهم میکرد. هر وقت جیبش خالی بود از همسایه ها و دوستاش غرض میگرفت. اما همیشه عباسش بود که این کارها از چشم زنش که حتما زبان به سرزنشش باز میکرد پنهون بمونه. شعار شده بود این مطلب که همه چیز به خیر و خوشی تمام خواهد شد. اما اونچه چه بر سرش اومد دمار از روزگارش در آورد کم کم دوتار وضعی شد که هوش و حواس درستی برای چرخوندن امور زندگی نداشت. چون اگر چه به نظر می رسید که بخت نیک از اون رو اگر با گذشت زمان همه چیز خودش رو یک به یک از دست داد و سر آخر کارش این شده بود که کیسه های زورت رو به دستور زنش به آسیاب ببره و اگر توی این کار تنبلی یا کند کاری میکرد، علاوه بر ناسزا شنیدن از غذای درست حسابی هم خبری نبود. این اوضاع و احوال قلب نازا دختر زیباش رو به درد رو زیرا که اون مایه آرامش زندگی پدرش بود. پدرش رو خیلی دوست میداشت و براش قصه میخورد. پیتر که تو آشپزخونه مهمان سراش نشسته بود و به آینده دخترش فکر میکرد حرفای چوپان رو درباره گنج پنهونه در دل زمین شنید و ناگهان به خاطر دخترش عزمش رو جمع کرد که دنبال گنج به و اونو پیدا کنه. اون پیش از اینکه روی صندلی مخصوص خودش که کسی به جز صاحب مهمان سرا نمیتونست به اون بنشینه بلند بشه همه نقشه‌هاش نقشه هاش رو ریخته بود. استاد پیتر شادتر از هر زمان دیگهی با دلی پر امید به خونه رفت. زمان درازی میگذشت که کسی اون رو تا این اندازه شاد و سرحال ندیده بود. اما ناگهان به یادش اومد که بیش از هر کاری باید به فکر به دست آوردن ریشه که چوبین باشه. اون یواشکی با قلبی گرفته پا به خونه گذاشت و خودش را رو روی بستر بوریای سفت و خشک خوشگنده. نتونست به و نه آرامش داشته باشه. همین که هوا روشن شد از جا بلند شد و اون چرا که باید انجام میداد تا گنج رو پیدا کنه مو به مو نوشت چون میترسید که چیزی رو از قلم بندازه. وقتی نوشتر رو خوند و مطمئن شد که چیزی رو جان انداخته خیالش راحت شد. بیش خودش فکر کرد که فقط یک زمه سونه دیگه مجبوره برای همسرش کار طاقت فرسا انجام بده و بعد از اون دیگه مجبور نیست که با مونده عمرش کیسه های رو به دوش بگیره و توی راه ناهموار به سوی آسیا پیش بره با این افکار قلبش آرامش گرفت چیزی نگذشت که صدای خشن و نخراشیده زنش رو شنید که موقعی انجام کارهای خونه زیر آواز صبحگاهیش میزد و گاهیم به دختراش میپرید و ناسزا میکار زهن در حالی که شوهرش داشت لباس میپوشید در او محکم باز کرد و گفت: خب، میگسار. این دو کلمه به جای سلام و صبح خیرش بود. بعد ادامه داد: معلومه که تمام شب کارت میگساری بوده تا کی میخوای پولی که به زحمت درمیارم و هدر بدی؟ آدم همیشه مست، شرم کن. موساد پیته که به این جور حرف زدن عادت کرده بود. اصلا ناراحت نشد و به دل نگرفت. اون منتظرمون تا طوفان خونگی فروب شینه ها بعد سر صحبت باز کرد. اون گفت زن عزیزم اینقدر خود تازار نده. کار خوبی در نظر دارم که اگر موفق بشم زندگیمون از این رو به اون رو میشه. طوفان خونگی یعنی همون همسرش با فریاد گفت تو کار خوب تو به جز و روبر کردن به درد هیچ کاری نمیخوری. شوهر گفت وصیت میکنم وقتی زمان رفتنم فرارسید همه چیز به تو برسه. مطمئن باش پرد از فوتم زای خونه رو به راه میشه. این صحبت ناگهانی قلب دختر رو در هم فشارد. به یادش اومد تمام شب رو در خواب دیده که قبلی تازه میکنده. این افکار چنان اون رو غمگین کرد که حق حق گریه کرد اما مادرش فقط با داد و فریاد گفت آدم بدبخت تا فقط بلدی زندگیم رو به خاک سیاه بشونی حالا هر پس وسیت میزنی و مثل آدمی دیوونه به طرف شوهرش حمله برد و اون رو محکم گرفت تا چشمهاش رو از حدقه درآورد به حال گاهی وقتها هم خبری از دعوا مرافع نبود و همه چیز به خوبی پیش می رفت. اما استاد پیتر از همون روزی که بران شد دنبال گنج بره سکه سکه پولی رو که دخترش لوسیا به او میداد پسانداز پسنداز می, پس می کرد. اون به پسرهایی که می شناخ پول میداد که اگه تو جنگل لونهی دارکو به سیاه دیدن با خبرش کنن. اون با دادن سکه های خورد به پسر بچه ها اونها رو به جنگل و درختسارها ها می فرستاد، اما اونها به جای اون که دنبال لونه باشند برای خودشون بازیگوشی گوشی و پشتک بارو میزدند بچه ها استاد پیتر رو تا دور های تپه ها و دره های کوچیک و تخت سنگ ها بردن و جوجه کلاهها یا آشیانه های سنجاب ها رو توی تنه تو خالی درخت نشونش دادند. وقتی از اونها خشمگین و عصبانی شد بریشش خندیدن و در رفتن این وحث تا مدتها ادامه پیدا کرد اما سرانجام یکی از پسر بچهها توی درخت سر سرسبز میان کبوترای صحرایی چشمش به دارکوبی افتاد از وقتی لونه دارکوب رو روی درخت نیمه خوشگیر پیدا کرد شتابناک نزد استاد پیتر دوید تا اون رو از این کشم با خبر کنه پیتر از اینکه بخت خوش به اون رو آورده بود به سختی باورش میشد اون شتابان به درخزار رفت تا با چشمهای خودش لونه واقعی رو ببینه و وقتی به پای درخت رسید براستی پرندهی رو دید که با والای درخت رفت و از اون بیرون می پرید. انگار که داشت لونه می ساخت و تو اون گذاری می کرد پیر مرد که از این کشف خوشبختی آور از شادی توی پوست خودش نمی‌گنجید، بلافاصله دنبال تهیه ردای قرمز رفت. سراسر شهر فقط یک نفر ردای قرمز داشت و اون مال مردی بود که مردم شهر هیچ وقت تمایلی نداشتن چیزی از اون بخرن چون اون مرد کسی به جز آقای هامرلینگ جلات نبود. استاد پیتر حاضر بود جانش رو بده اما به سراغ مرد دارزن نره اما هرچی که تلاش کرد نشد که نشد اون چاره ای نداشت و با اینکه دلش اصلا نمیخواست اون رو ببینه به ناچار نزدش رفت و با چاپروسی و اینکه اون مردی محترمه تقاضاش رو با اون درمیون گذاشت سر آخر آقای همرلینگ با کمال میل ردای قرمز اداریش رو به اون امانند داد حالا پیتر پاشهی رو که برای به دست آوردن چوب چادویی لازم داشت به دست آورده بود. اون از تره درخت توسه بالا رفت و خودش رو به لونه دارکوب رسند. همه چیز همونطوری بود که پلیز میخواست. همین که دارکوب به ریشه چوبی در منقارش بلانه برگشت پیتر که پشت درخت کمی کرده بود ردای قرمز آتشین رو بای درخت په کرد و چنان ماهرانه به لرزش انداخت که پرنده وحشت کرد و میشه یه چوبین رو به زمین انداخت. پیتر هم اون رو راحت پیدا کرد. تا اینجا نقشه یه استاد پیتر جامعه عمل به خودش پوشید. حالا قطعه چوب جادویی شاه باز کردن در ینجخونه خونه که برای دارندش بخت بینظیر و رو رقم میزد واقعا توی دستش بود. اون که تمام فکرش به کوهستان بود، پنهانی مقدمات سفرش رو تداره دید. با خودش یه چوب دست، کیسه ای محکم و جعبه کوچیک که دخترش لوسیا به اون داده بود، برداشت و پا به راه گذاشت. از غذا درست همون روزی که پیتر قصد داشت دنبال گنجابی بره، لوسیا و مادرش صبح زود به شهر رفتند و از اون خواستن که تو خونه بمونه و مراقبه همه چیز باشه. با وجود اینکه خودش رو برای حرکت آماده کرده بود، وقتی دید باید توی خونه بمونه برام شد که قدرت عجاب برکنی نیشه جادویی رو به خاطر دل خودش هم که شده امتحانی بکنه. همسرش بانویلس گنجه محکمی با هفت قفل داشت که توی دیوار و اتاقش ساخته بود و ها و تمام پولی که پس انداز کرده بودو، توی اون نگه می‌داشت و کلید همه قفرها رو همیشه به گردنش می آبید. چون اصاد پیتر آدم بلخرجی بود و هیچ توجهی به خرج و برج خونه نداشت پس همه پولها رو توی گنجگ خونش پنهان می‌کرد و شوهرش هیچ اطلاعی از این راست که پنهان نگه داشته شده بود نداشت این که براش بهترین فرصت بود که جای پولها با خبر بشه اون از ریشه چوبین جادویی به عنوان کلید استفاده کرد. در نهایت شگفتی صدای تلق و تلق و چرخندگی هر هفت قفر را با گوشهای خودش شنید و ناگهان درهای ینجی دیوار یک مرتبه چارتاق باز شدند. زخیرگاه قطعه های تلای زن حریصش مقابل چشماش خودنمایی کرد. اون مات و مبهوت سر جاش ایستاده بود و نمیدونست از چه چیزی بیش از همه شادی و خوشحالی کنه از کشف ناگهانی ثروت زنش یا از قدرت واقعی جادویی ریشه چوبی بالاخره به خودش اومده و متوجه شد که لحظه واقعی سفرش فرارسیده. اون اون جیبهاش رو با هرچی پول و تلات و گنجه بود پر کرد و دوباره درهای ینجی خالی شده است، رو بست و به هیچ معطلی به راه افتاد. موقعی که بانو، ایلسه و دخترش به خونه اومدن، دیدن که در خونه قفل و استاد بیتر هم توی جایی دیده نمیشه. اونا در زدن و صداش کردن، اما صدای از چیزی به جز گربه خونگیشون در نیومد. در آخر دنبال کلیساز فرستادند تا بیاد و و در رو باز کنه. اونا همه جای خونه رو خوب گشتن و سراغ این نبود که به اون سرک نکشیده باشند. اما استاد پیتر انگار آب شده بود و به زمین فرو رفته بود. سرانجام بانویلس فریاد کرد. کی میدونه حتما اون تنه لش بدبخص و به زور به یکی از میکده ها رفته و مشغول میگساریه و ناگهان فکری از سرش گذشت و انگار که برق گرفته باشدش از جا پرید و دنبال کلیداش کشت. اون پیش خودش فکر کرد که نکنه کلید به دست شوهر بی مصرف و به درد نخورش افتاده و به گنجینش دسترسی پیدا کرده باشه. اما نه. کلید مثل همیشه سر جای همیشگیشون به دور گردنش بود. و جمع این اینطور به نظر می رسید که دست نخورده بود. نیم روز شد. شب شد و نیمی شب. و همچنان خبری از پیتر نبود. حالا موضوع ناپیدایی شوهرش به مسئله واقعا جدی تبدیل شده بود. با به بیادش اومد که چقدر شوهر بیچارش رو ازیت از آزار کرده. پشیمونی از کارهاش اون رو بیش از اندازه توی غم و اندوه فرو برد. زن یه کنان گفت آه لوسیا واقعا نگرانم که پدرت بلایی به سر خودش رو برده باشه و هر دو تا صبح برن سر خیالاتی که به سرشون زده بود ناله و زاری کردن باز هم همین که هوا روشن شد اونا هم به همه جای خونه سرک کشیدن و همه میخاه و چوب های سخ و رو با دقت وارسی کردن اما متوجه شدن که استاد پیتر از هیچ خودمه اونها خودش رو فرو نهی بعد همسایه ها دست به کار شدن و با چوبهای بلند مایگیری به همه آبگیرها و رودها رفتند اما اونها هم چیزی پیدا نکردند. و بعد بانوین سه از فکر رو جستجو برای یافتن شوهرش بیرون اومد و خیلی زود خودش رو با وضع موجود و افتاد. البته تنها فکر و نگرانش این بود که کیسه های زهرت رو چه کسی به آسیا ببره. اون بران شد که اولاغی قوی و پرزور بخره و یکی هم انتخاب کرد و پس از شک و چونه زدن با فروشنده سر گنجه رفت تا پول برداره. اما همین که چشمش به قفسه های خالیت بگی گنجه افتاد و فهمید چه بلایی به سرش اومده، حال عجیبی پیدا کرد. یک لحظه مات و گنگ سر جاش ایستاد و بعد چنان دوچار خشمی آتشین شد که جیغی وحشتناک ناکشید. لوسیا مثل برق به طرفش دوید. اما همین که فهمید پولها و طلاها ناپدید شده از تحه دل خوشحال شد. اما چیزی نگذاش که نگران جون پدرش شد. چون فهمید که پدرش با برداشت پولها و ها سر به پهن دشت جهان گذاشته تا هر طور که شده بختش رو با آزموندن روشی تازه پیدا کنه تقریبا یک ماه پس از این اوزا روزی یک نفر در خونه بالونیلی سر رو زد اون رفت که ببینه آیا مشتری برای خرید غذا اومده اما مرد جوان زیبایی که مثل پسرای والا مقامان لباس بر پشت در بود جوان با ادب بسیار ادای احترام کرد و انگار که دوست قدیمی خانواده است هرچی بانو الی تا اون زمان حتی یک بار هم چشمش به اون نیافتاده بود در دختر زیباش پرسجو کرد به هر حال اون جوان مهمون رو به خونه دعوت کرد همی که جوان روی سندلی نشست دلیل اومدنش رو توضیح داد. در فضایی پر رمز و راز اون از بانو با تقاضا کرد که اجازه بده با دخترش لوسیا صحبت کنه. چون درباره مهارتش توی هنر سوزندوزی مطالب زیادی شنیده بود و به اونجا اومده بود تا حق عمل کاری دختر رو پرداخت. بانو به فکر فرو رفت که منظورش چنو حق عمل کاریه که پسر جوان قریبهی باید به دختر زیباش پرداخت کنه. چون جوان به هیچ اعتراضی قبول کرد که در حضور بانو ایلسه با دختر کوشا و زرنگش دیدار و صحبت کنه مادر از دخترش خواست دست از کار بکشه و به نزدشون بیاد. دختر هم سر به فرمان مادر داد و وقتی جوان غریبه رو دید کمی سر جاش ایستاد اون در حالی که صورتش از شرم سرخ شده بود سرش رو پایین گرفت تا چشمش به چشم مرد جوون نیفته به سر جوون با اش علاقه نگاش کرد و خواست دست لوسیا رو بگیره اما اون دستش رو عقب کشید. لوسیا با صدای بلند گفت آه فریدلین چرا به اینجا اومدی؟ فکر میکردم صدها فرسنگ از اینجا دوری؟ آخه به اینجا اومدی تا دوباره عذابم بدی؟ جوان پاسخ داد. نه گرامی ترین دوشیزه. به اینجا اومدم تا خوشبختی و کنارت کامل کنم. از آخرین باری که دیدمت بختم کاملا دگرگون شده. من دیگه اون جوان آوارو خونه به دوش نیستم. اما یه درگذشت و مقدار زیادی پول و لوازم برام به جا گذاشت. برای همین دل و جارتی پیدا کردم تا به خدمت مادرت بیام و خاستگاریت کنم. میدونی که تو را از جون و دل دوست دارم. اگه تو هم منو دوست داشته باشی؟ راستی که مردی خوشبخت خواهم بود. در حالی که مرد جوان حرف میزد، لوسیا با چشمای آبی قشنگش شرم‌سرانه نگاش میکرد. حالا؟ لبخندی شیرین لوی لبان سرخفامش از هم شکافت. اون دوزکی نگاهی به مادرش کرد تا از حالتش بفهمه کلن به چی فکر میکنه. اما بانو قرق در ماتی و بخت خودش سر جاش ایستاده بود. چون فکر میکرد که دخترش از هر جهت زیر نظر داشته. اما حالا متوجه شده بود که با همه مراقبت جدیش، اون با مرد جوان زیبای غریبه آشنا بوده و کاملا مایل که همسرش بشه. خاستگار عجول برای اینکه راهش رو درای در رسیدن به همسر دلخواهش هموار کنه، روی میز رو با تکه های طلا به عنوان هدیه عروسی به مادر درخشان کرد. اون دامن لوسیا رو هم پر از طلا کرد. خلاصه راه دستیابی به عروس هموار شد و بانویل سه هیچ مشکلی تو کارشون ندید و تند و زود قرارها گذاشته شد. در حالی که بانوییل سهقطه ها و سکه های طلا را از روی میز جمع می تا جای امن پنهان کنه دو دنداده زمزمه های عاشقونشون رو پی گرفتن. حرفهای فریدلین لحظه به لحظه باعث خوشنودی و، خوشدلی بیش از پیش لوسیا شد. حالا هم همه زیادی توی خونه به پا شده بود. همه دنبال فراهم ساختن جشن عروسی بودند. چند روز بعد، ارابه‌ای با بار سنگین جلوی در خونه ایستاد و تعدادی زیادی جعبه و بسته از اون تخلیه شد. به طوری که بانوی از تماشای ثروت بیحد و اندازه داماد آینده‌اش غرق در شگفتی شد. روز عروسی تعیین شد و همه دوستان و همسایه ها به عروسی دعوت شدن. در حالی که لوسیا حلقه گل عروسیش رو به سرمیزاش تا ببینه اندازش هست به مادرش گفت از این حلقه گل عروسی خیلی بیشتر خوشم میاد. اگه پدرم اینجا بود و من رو تا کلیسا همراهی میکرد، ای کاشون اینجا بود. در اینجا ما غرق در سربت هستیم. در حالی که شاید اون برای سیر کردن شکمش تحمونه غذای دیگران رو از روی میز ساریخده اون میخوره و از می این فکر که پدرش تو چه وضیح هست؟ به گریه افتاد. گفت منم واقعا دلم می اون برگرده. به هر حال وجود مرد خوب در خونه کنار خونوادهش واقعا نمته. اما راستشا بخواین اون از این که دیگه کسی نبود به سرش قرب زنه و بد و بیراه بگه ناراحت و از یک نواختی زندگیش خسته شده بود. اما چند روز بعد فکر میکنید چه اتفاقی افتاد. درست روز عروسی مردی که چرخ دستی رو میکشید به دروازه شهر نزدیک شد. اون گفت که بار چرخ دستیش میخوا با پرداخت در به سمت خونه عروس افتاد و در زد. خود عروس پنجره رو باز و سرش رو بیرون کرد تا ببینه چه کسی در میزنه و با چشمای خودش پدرش یعنی پدر پیتر رو دید. سراسر سر خونه سرشار از شور و شادی شد. لوسیا به طرف پدرش دوید و اون رو در آغوش گرفت. حتی بانوی لیسه شادمانه به اون خوشامد گفت. البته زخم زبونشون رو هم از یاد نبرد خب، ویلگرد، امیدوارم سر راه شده باشی، چون به یاد گنجه خالی شده افتاد. پیتر با دامادش خوشوبش کرد و در حالی که مادر و دختر میخواستن همه چیز رو برای خوشتریه پیتر تعریف کنن، اون زیرکانه داماد رو نگاه میکرد. اینطور به نظر میرسید که از داشتن چنین دامادی کاملا راضیه. وقتی بانو ایلس مقداری خوراکی برای شوهرش برد چون دلش میخواست که همه ماجراش رو بشنوه مشتاقانه از اون پرسید که چرا و به کجا رفته بود؟ شوهرش گفت خداوند به زادگاه هم برکت بده من به سراسر کشور رفتم و همه جا دست به کاری زدم حالا توی کار تجارت آهن و وسایل آهنی هستم البته تا الان توی این کار بیشتر سرمایه گذاشتم و کمتر سود کردم. این بشکه میخ تمام سرمایمی که دلم میخواد با فروشش لوازم خونه عروس رو فراهم کنم. این حرفها با سر رو به خشم آورد. به طوری که شدت عصبانیت چنان جیغی کشید که پرده های گوش که نزدیکشون بودن به لرزه درآمده اومده بود و چیزی نمونده بود که نیمه کر بشن. همون موقع فریدلین شتاب زده و سمتشون اومد و به پدر بیتر پیشنهاد کرد که برای ادامه زندگی مدتی پیش اونو دخترش لوسیا بیاد و اولاد که کنارشون زندگی آرومی میخواهد داشت و همیشه براشون عزیز خواهد. لوسیا هم گفت که این خواسته قلبیشه. روز بعد او به همراهی پدرپیتر پیتر به کلیسا رفت و تو اونجا خطبه افت در نهایت شادمانی خونده شد. به زودی پس از جشن عروسی زوج جوان به خونه قشنگی که فریدلین خریده بود رفتند. خونه بزرگشون باغ چمنزار، هوز بزرگ ماهی و تاکستان داشت. پدرپیتر هم کنارشون زندگی آرومی داشت. همه بر این باور بودند که او زندگی آروم خودش رو مدیان لطف و محبت داماد پولدارشه بله هیچ هیچکس نمیدونست حتی فکرشم که نمیکرد که بشکه پر از میخ چیزی به جز شاخ فراوونی نبود که از درونش سعادت و کامکاری سرریز شده بود حالا به عقب برمیگردیم پیتر این اینکه کسی متوجه بشه با موفقیت به کوهستان گنج رسید بهراستی اون راضی و خوشنود بود و از وقتش به بهترین شکل استفاده کرد تا اینکه توی درهی به رود کوچیک رسید که توی پیدا کردنش واقعا دچار زحمت و دشواری شده بود مشتاقانه به راهش ادامه داد و به زودی به جای گود و تو رفته توی جنگل رسید. به طرف پایین راه افتاد. مثل موش پور در زیر زمین برای خودش راه باز کرد. میشه یه چوبین به فریادش رسید و سرانجام گنج خونه رو در مقابل چشمای خودش دید. خب؟ حتماً میتونید حتی اندازه شادمانی پدر رو تصور کنید. اون کیسش رو تا جایی که جا داشت و خودش همزور حملش رو داشت پر از تلا کرد. و با قلبی سرشار از امید و خوشحالی از هفتاد و هفت پله زیر بار سنگینی که بر پشتش گرفته بود تلو تلو خوران بالا رفت. چون به وعد و وعید شبه اعتماد کامل نداشت بدون اینکه به راست و چپ نگاه کنه شتابان از اونجا دور شد و تا موقعی که خودش رو تو روشنی روز ندید خیالش راحت نشد. بعدها حتی نتونست به یاد بیاره که دیوارها و ستونهای خزانه و گنجخونه از آکندگی گوهرها و تلاها می یا نه؟ خلاصه همه چیز به خیر و خوبی تموم شد. اون نه علامت دهنده دید و نه چیزی شنید تنها چیزی که اتفاق افتاد این بود که در آهنی بزرگ درست موقعی که اون پاش و بیرون گذاشت با صدای بلند پشت سرش بسته شد و همون موقع به یاد آورد که ریشه جادویی رو توی خزانه جا گذاشته و این یعنی اینکه اون دوباره نمیتونست برگرده و کیسه رو پر از گنج کنه به هر حال. اون از اینکه به دست آورده بود راضی و خرسند بود و خودش را برای به دست آوردن گنج بیشتر به زحمت منداخت. اون پس از اینکه همه راهنمایی‌های پدر مارتین رو مو به مو و با دقت زیاد انجام داد، وقتی به محل گود و توراخت جنگر رسید، در گوشه نشست و به فکر فرو رفت که گنجش رو چطور به زادگاهش ببره بدون اینکه اون همسر بددهن و قسمت کنه و برای خودش نگه داره. اون خوب می که اگر زنش به وجود گنج پی ببره دیگه رنگ و روی آسایش رو نمی بینه. پس از ساعتها فکر بررسی همه جوانه سر راخر راهی به فکرش رسید. اون با کیستش به نزدیک ترین روستا رفت و یه چرخ دستی بشکه یه محکم و مقدار زیادی می خریداری کرد. بعد تلاهارو رو بشکه جا داد و روی اونها رو با لایه های میخ پوشوند. اون با دشواری زیاد تونس بشکه رو توی چرخ دستی می‌ذاره. کارش که تموم شد، راهی رو که به زادگاهش میرفت و در پیش گرفت. جایی در راه به مرد جوان زیبا اندامی که شدت غم و غصه تو لاگ خودش فرو رفته بود برخورد. پدر پیتر که دلش میخواست همه شاد و خوشحال باشن، مخصوصا خودش تو اون موقع چنین حالی داشت شادمانه با مرد جوان احوال پرسی کرد و پرسید که به کجا میره جوان قمگینانه پاسخ گفت پدر جان زیر این آسمون که بود برای خودم ول میگردم شاید هم از این جهان پا بیرون بذارم تا هر جا که پاها منو ببرند میرم پیتر پرسید حالا چرا بیرون از جهان؟ مگه دنیا با تو چه کرده؟ جوان پاسخ داد. کاری با من نکرده. من هم همینطور. به هر حال دیگه چیزی تو این دنیا برای اون باقی نموند و من هم کاری با اون ندارم. پدر پیتر تنهایت تلاش خودشو کرد تا با مرد جوان دل و بده و اون رو حال بیاره. سپس از اون دعوت کرد و در اولی مهمون سرایی که سر راهشون بود با هم شام بخورد. چون فکر میکرد که شاید گرسنگی یا نداری باعث درد سر یه جوون غریبه شده باشه اما وقتی ظرف غذای خوشمزه روی میز گذاشته شد اون توجهی به اون نکرد اینجا بود که استاد پیتر متوجه شد درد مهمون جوونش درد دله پس با مهربونی از اون خواست یه اش رو تعریف کنه جوان پرسید پدر جان چه فایده ای داره مگه میتونی کمکم کنی یا آرامشم رو برگردونی استاد پیتر پاسخ داد کی میدونه شاید بتونم کاری برات انجام بدم بیشتر وقتها تو زندگیمون کمک از جایی میرسه که اصلا انتظارش رو نداریم این حرفها به دل مرد جوان نشست و به دل اون جرعتی داد و قصهش رو تعریف کرد جوان غریبه چنین گفت من کماندارم و در خدمت کنت بالاوای هستم که توی قصرش بزرگ شدم. قبلترها سربرم به سفر میرفت. میان وسایلی که با خودش آورده بود تصویر نقاشی شده دوشیزه بسیار زیبا و دوست داشتنی وجود داشت که من با همون نگاه اول دل باختم و از اون زمان دیگه به چیزی بجز یافتنش و ازدواج با اون فکر نمیکردم. سرورم کند نامون دوشیزه رو گفت اما به عشقم خندید و اصلا به من اجازه خروج از قصر رو نداد. اما من به حرف دلم گوش کردم و شبونه از قصر بیرون زدم تا صاحب اون تصویر رو پیدا کنم. به زودی به روستایی که دوشیزه تو اونجا سکونت داشت رسیدم. اما مشکل بزرگی انتظارم را میکشید. مادرش همیشه اون رو زیر نظر داشت و چنان سخیرانه با اون رفتار می کرد که حتی اجازه نداشت از پشت پنجره به بیرون نگاه کنه یا پاش رو تنها از خونه بیرون بذاره. من واقعاً مونده بودم که چطور خودم رو به اونها بشناسونم. بلاخره جامعه پیرزنانه به تنگ کردم و دلیرانه در خونشون را رو زدم. خود دوشیزه در رو باز کرد. با دیدنش چنان افسون شدم که نزیک بود از جامعه بدلی خودم دور بشم. اما خیلی زود خوش و را جمع کردم و از اون خواهش کردم که برام یه رومیزی قشنگ ببافه چون تو سرتاسر سر اون ناهیه سر زبونها بود که اون تو کار سوزندوزی رو دست نداره. با این روش تونستم پام و به خونشون باز کنم و بیشتر وقتها به بحونه ای که ببینم کار بافت رومیزی چطور پیش میره به دیدنش میرفتم. یه روز که مادرش برای خرید به شهر رفت، دل به دریا زدم و لباس بدلی رو بدور انداختم و از عشقم بهش گفتم. اون اولش ماتش پرد و بی حرکت موند. اما التماسش کردم که به حرفام گوش بکنه. کم کم متوجه شدم که اون هم چندان بیعلاقه نیست. البته به خاطر نافرمانی از سرورم و فریب اونها با پوشیدن لباس زنونه منو سرزنش کرد هر چی گفت به جون خریدم وقتی از اون تقاضا کردم که همسرم بشه غمگین گفت که مادرش دمار از روزگار خاستگار آسپاز در میاره و از من تقاضا کرد که هر چی زودتر از اونجا دور بشم چون اگه مادرش متوجه میشد هر دوی ما بچوری به درد سر می افتادیم جوان ادامه داد سخنی تلخ‌تر از این نشنیدم از من خواست که از اونجا دور بشم و من باید به فرمانش عمل می کردم. مدت است که غمی سنگین روی قلبم چنگ انداخته و به هر طرف سرگردونم. راستی مرد بی پول و بیمال و ملال چطور میتونه به عشق لوسیا دست پیدا کنه؟ استاد پیتر که با حواس جمع به سخنان مرد جوان گوش میکرد با شنیدن اسم دخترش گوشهاش تیز شد. اون خیلی زود به عشق پاک واقعی مرد جوون به دخترش پی برد و متوجه شد که اون رو از ته دل دوست داره. استاد پیتر گفت براستی که قصه عشق عجیبه. حالا چرا با پدر دختر صحبت نکردی؟ چرا لوسیا رو از پدرش خاستگاری نکردی؟ شاید به دلت راه میامده و به داشتن دامادی مثل تو افتخار هم میکرد. مرد جوان گفت، افسوس، معلوم نیست که پدرش کجا رفته و زن بچهش رو بیخبر رها کرده. کسی هم نمیدونه که پدر لوسیا کجا رفته. زنش دائما از اون با بد و بیرا گویی گلو شکایت میکرد و هر وقت دخترش که برای آمد جون عزیزتره طرف پدرش رو میگرفت اون رو هم از زخم زبونهاش بی نصیب نمیذاشت. پدر پیتر با شنیدن این صحبت تا حدودی سرگرم شد. اون از پسر جوون خیلی خوشش اومد و متوجه شد اون تنها شخصیه که میتونه تو جابجایی گنجش و استفاده درست از اون یاریش کنه. تازه اگر دامادش هم بشه که دیگه مجبور نیست از دختر دلبندش جدا بشه. استاد پیتر گفت: اگه به توصیه هام گوش کنی، قول میدم که ای رو که خیلی دوستش داری ازدواج کنی. پس بیشتر از این زمان نگذره و دیر نشو و همراهیم کن. فردلین رنجشامیزانه گفت: دوست من دست انداختن مرد جوان نگون بختی مثل من کار بدیه. چون فکر میکرد استاد پیتر اون رو مسخره میکنه و ادامه داد شما بهتر کسی دیگر رو پیدا کنید و با های قشنگتون فریبش بدید. و فوراً از جا بلند شد و همین که خواست شتابان به راه میفته استاد پیتر دستش رو محکم گرفت و گفت صبر کن آدم عجول شوخی نمیکنم. سر به سرت هم نمیذارم و برای اثبات حرفم از هر نظر که بگی آمادم. به این ترتیب، اون گنجی رو که زیر میخوا پنان کرده بود و نشونش داد و درباره نقشش با پسر جوون صحبت کرد. بر اساس نقشه استاد پیتر، فریدلین باید توی نقش دامادی پولدار و کامکار به خاستگاری لوسیا بره. اما مهمتر از همه باید جلوی زبونش رو نگه داره و، راز گنج رو شکار نکنه تا همگی تا پایان عمرشون در نهایت آرامش و کامیاری زندگی کند. پسر جوان از تغییر ناگهانی بختش چنان شادان شد که از شادی توی پست خودش نمی گنجید اون به قدری سر ذوق و شوق اومده بود و حیجان زده شده بود که نمیدونست چطور از پدر پیتر رو بخشندگیش سپاس گذاری کنه سپیده دم پا به راه گذاشتن و به زودی به شهر کوچیک رسیدن. فردلین خاستگار مثل سله شوران، جامعه با شکوه پوشید و پدر پیتر هم جیب‌های اون رو انباشته از طلا و گوهر کرد تا به عنوان هدیه عروسی به مادر لوسیا بده. پدر پیتر و فردین با هم قرار گذاشتن که وقتی همه چیز رو به راه شد، پنهانی اسات رو باخبر کنه که عرابه پر از وسایل منظر رو به خونه عروس بفرستند. اون چه برای مقدمات جشن عروسی تدارک دیده شد در اون شهر کوچیک چنان جنب و جوشی در مردم به وجود آورد که همه از داماد ثروتمند اسات پیتر حرف می زدن. به هر حال پیش از اون که اونها از هم جدا بشن، باز هم پدر پیتر آخرین ها و توصیه ها را به فرلین گو کرد که بند و آب نده و رازشون را بر ملا نسازه حتی در مورد گنجشون بلوسیا هم که قرار همسرش بشه حرفی نزنه خلاصه استاد پیتر از سفر دوشوارش به کوهستان نهایت بهره رو برد و هیچ حرف و حدیثی دربارهش به بیرون درز نکرد در دوران پیری ثروتش به قدری زیاد شده بود که حتی خودش نمیدونست از نظر ثروت تو چه ردی قرار داره البته همه فکر میکردن که تمام ثروتشون به فردلین تعلق داره فردلین و همسر محبوبش در نهایت خوشبختی و کامکاریو با آرامش در کنار هم زندگی کردن و روزگار گذراندند اونها میان شهر همشهریان خود از افتخار رو احترام زیاد و شایستهی برخوردار بودند و تا روزگارها وقتی همشهریاشون میخواستن از مردی ثروتمند مثال بزنند و یاد کنند میگفتن پولدار مثل داماد پیتر باشه سفر به دنیای پر رمز و راز ها